هر یک از شاگردان مدرسه آدولف هیتلر میبایست برای پذیرفته شدن در دانشگاه نه سال در آن مدرسه درس بخوانند. هنگامی که من وارد مدرسه شدم، تمام شاگردان زیر 16 سال به لشکر دوازدهم اس اس به نام جوانان هیتلری که دلیرانه در کائن میجنگید اعزام شده بودند. تنها ما کوچولوها باقی مانده بودیم. هر یک از شاگردان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه و پیش از شروع درسهای دانشگاهی میبایست به مدت دو سال در صنایع فولاد و یا در معادن زغال سنگ کار کند. وقتی تحصیلات دانشگاهی را شروع می کردیم، انتظار داشتند دست کم دو مدرک دکترها بگیریم. کادر آموزشی مدرسه ما از این لحاظ برای ما سرمشق بود. هیچیک از آنها کمتر از دو مدرک دکترها نداشتند. استاد تاریخ ما چهار دکترها داشت. تمامشان برای سخنرانی به دانشگاه دعوت می شدند. اگر اینها چند سال زودتر برایم اتفاق افتاده بود، شاید بیشتر علاقم را جلب می کرد. اما از بخت بد، چند هفته پس از ورودم به آن مدرسه، متوجه شدم که باز هم اشتباهن به آنجا آمدم. وقتی سر کلاس نشسته بودیم، باز هم صدای قررش آتش را از راه دور می شنیدیم. خط اول جبهه به سوی ما پیش می آمد. یک روز در حالی که تازه به محل و طرز فکر ویژه مدرسه عادت کرده بودم، به محوت هزار شدیم. به دور آقای کلاسنر که مانند سایر معلمان یونیفرم حزبی‌اش را پوشیده و در جلوی میل پرچم ایستاده بود، گرد آمدیم. افسران دیگری هم در کنار معلم‌هایمان ایستاده بودند که قبلا آنها را ندیده بودیم. همه به حالت خبرداری ایستادیم. آقای کلاسنر این طور شروع به سخن کرد. مدتی از اومدن شما به این مدرسه میگذره و در این مدت با هم کار کردیم. یعنی دست کم عالم‌هایی هر کاری که از دستشان برامده دریغ نکردند. کم و بیش اختلافاتی با یکدیگر داشته ایم که در مجموع به صورت جدی در نیامده است. پیشوا که به شما امکان داد به اینجا بیایید، زندگی کنید و درس بخوانید، در عوض از شما انتظاری هم دارد و همینطور مردم آلمان که حزینه تحصیل شما را متحمل شدهاند با توجه به فداکاری های سربازان آلمانی که در خطوط اول جبهه از بالتیک تا دریای سیاه و از دماغی شمال تا سواحل دورافتاده قاره آفریقا نبرد می‌کنند، تقاضای چندان زیادی هم نیست. در زمانی که این حرف گفته میشد، هیچ سرباز آلمانی در آفریقا نبود مگر تعدادی اسیر. میدانید که دوستان بزرگتر شما از ولشکر دوازدهم اساس اس یا سازمان جوانان هیتلری هستند. لشکر که بیش از هر واحد دیگری در راه پیشوا جان فشانی کردند و حتما میدانید که ترهای آینده پیشوا بر روی این سازمان پیاده خواهد شد. بسیاری از رفقای شما با افتخار و سربلندی در جنگ با جنایتکاران آمریکایی انگلیسی جان خود را از دست دادند. فرزندان من، در حال حاضر وظیفه شما خدمت به آلمان است. شما می خود را سربازان لشکر اس, اس جوانان هیتلری بدانید. کسانی که بیش از چهارده سال دارند پس از آموزش نظامی در یگانهای احتیاط لشکر خدمت خواهند کرد. کوچکترها هم آموزش لازم را خواهند دید و در حد امکان از آنها استفاده خواهد شد بعد از این مراسم میل دارم سرپرستان گروه را برای توجیه برنامهها در دفتران ببینم اما قبل از اینکه از یکدیگر جدا شویم باید به چند نفر ترفیق بدهم خبر دارم مثل مجسم بیهركت ایستادیم لانس، براون، زیگل و کوخ به پیش آنقدر حیرت کرده بودم که نمیدانستم چه کار باید بکنم اما وقتی متوجه شدم که منظورش واقعا من هستم با تردید و در حالی که صورتم از خجالت سرخ شده بود جلو رفتم به نام پیشوا، شما را به درجه سرجوخگی مفتخر می کنم با ما دست داد و سپس به صفوف خود برگشتیم تعجب من بیشتر از این جهت بود که تازه به آنجا رفته بودم و حتی محل را هم خوب نمیشناختم. جای این جور ها نبود. پس از خواندن سرود ملی به کلاس‌های درس برگشتیم. اولین کاری که کردم این بود که به فروشگاه رفتم و یک درجه نقره‌ای که نشانه سرجوخگی بود خریدم. وقتی به کلاس برگشتم بچه‌ها سر و صدا می کردند. معلم معلم‌ها هنوز نیامده بودند و برنامه ابلاغ نشده بود. در چنین فضای پر ابهامی بازار حدسا شای اداغ بود. خودم را در آن حیجان همگانی غریبه احساس می کردم. می و در دل آرزو میکردم کردم که ای کاش در خانه مانده بودم. وقتی فرمانده گروه هم برگشت، ما سرجوخه ها را صدا کرد و اطلاع داد که از این به بعد برنامه یادی تحصیلی متوقف شده و تمام وقت من صرف آموزش نظامی خواهد شد. تمام بچه ها به پنج گروهان شصت نفری و هر گروهان به چهار جوخه تقسیم می شوند. افراد زیر چهارده سال به زودی به یگانهای احتیاط لشکر جوانان هیتلری منتقل می شوند. همچون قرار است که به زودی آنیفرم جدید هم تحویل شود. قرار شد به افراد گروه ما آموزش مخابرات و ضد هوایی داده شود. من می بایست فرمانده ی جوخه مخابرات زده هوایی می شدم. این مأموریت علت ترفیعم را روشن کرد. به علاوه، میبایست مسئولیت حفاظت از انبارهای تجهیزات نظامی را که در جنگل‌های اطراف استتار شده بود، به عهده میگرفتم. طبق برنامه، آموزش ضد هوایی بلافاصله شروع میشود. افراد گروه همان روز بعد از ظهر حاضر شدند و به این ترتیب روح ما شکل گرفت. گرچه هیچ یک از افراد گروه از من قد بلندتر نبودند، مسئله‌ای که برای پسرهای جوان خیلی مهم است، اما همه از من بزرگتر بودند. من تنها فرد باواریایی بودم و این خیلی مهم بود افراد من عبارت بودند از فریتس شماره یک اهل برلن فریتس شماره ی دو اهل هامبورگ لودویک اهل برسلاو زیگفرید و اسکورچی اهل درستن و استین گونار که در مجارستان متولد شده بود و فرزند یک آلمانی مقیم مجارستان بود هینی و لوتر اهل فلنسبورگ دیتریش، اهل دوسلدورف، اوتو اهل اسن، هانس هنر اهل کایزرسلاتن، ویلی اهل الزاک، گونتر اهل ریگا، گنتر دیگری اهل حاله و بالاخر خودم که اهل مونیخ بودم. فریدس شماره یک را که برلینی بود، به عنوان معاون خودم انتخاب کردم. انتخاب او بیدلیل نبود. او مشت زن بسیار ماهری بود و بچه ها علاوه بر اینکه احترام او را داشتند، از او حساب هم می بردند سه نفر را نیز به عنوان نگهبان انتخاب کردم هفته ها بین گروه تقسیم شده بود هر گروه یک هفته تمام نگهبانی میداد در پایان هفته نگهبانی را به دو گروه دیگر تحویل میدادند که به کار آموزش نظامی و نگهبانی انبارهای مهمات در جنگل گمارده می شدند. روزهای اول من و نگهبان ها چندان فرصتی برای استراحت نداشتیم آموزش را با شناسایی انواع بامبفکن ها، وزیعت طرز بکار بردن فرستنده و گیرنده شروع کردیم و سپس هر یک از سردیدبان مسئول آموزش افراد خود شدند. به تدریج برنامه روزانه جا افتاد. چند عدد تخت دو طبقه گرفتیم و علاوه بر آن یک دستگاه فرستنده موج کوتاه و موج بلند نیز به ما تحویل شد. در آغاز همه چیز جنبه تفریح و سرگرمی داشت تا آنکه تازگی خود را از دست داد اما با وجود این اگرچه گروه زیاد جوری نبودیم ولی گروه شادی بودیم تنها وظیفه ما گزارش مسیر هواپیماهای دشمن به ایستگاه کنترل بعدی بود عملیات ضد هوایی در منطقه بسیار محدود بود و به همین علت انبارهای مهمات و تجهیزات را در این حوادی قرار داده بودند فشار حمله زیاد بود و حلقه محاصره ساعت به ساعت تنگتر میشد. شبها سر گهبانی از این موضوع جک می ساختیم. اما این ها اولین شبی که افق مغرب به میدانی از آتش تبدیل شد از سرمان پرید. موشک های منور با رنگ های گوناگون آسمان را روشن کرده بودند. ازشه یک یکدیگر را قطع میکردند و به درون هم میدویدند. بعضی از موشکها به شکل گلوله ای آتش در میآدند. که به نظر می رسید همه را کور خواهد کرد و گاهی همه آنها در یک لحظه در نور شدید تری از آتش مرگ بار سلاح دیگری محو می شدند. شب لبریز از صدای گلوله سلاحهای مختلف و قررش بیوخفی دژهای پرنده بود. هرگز پیش و پس از آن زمان چنین این های مرگی را ندیدم. هجومی که هدف قاطع آن نابودی کامل مردمی بود، که دیگر شکست خورده بودند. هواپیماها در تمام روز در حالی که پهنه افق را پوشانده بودند، از خط مرزی آلمان-بلژیک وارد خاک آلمان میشدند و به سوی شرق و جنوب شرقی میرفتند. گزارش جزئیات به ایستگاه کنترل مجاور کاری ای بود، زیرا کار از این مراحل گذشته بود. عبور آن هواپیماها حقیقتی انکارناپذیر بود. به جز چند مورد جزئی که خسارتی به همراه نداشت، هرگز مورد حمله بمب ها قرار نگرفتیم. دردسر و زحمت از بمب های انگلیسی و آمریکایی تایفون و لاکید بود که با شادمانی هر ای را اهم از خود رو آدم و وسایل نقلیه نظامی و یا کشاورزانی که در مزار کار میکردند درو میکرد. اغلب وقتی در برج های مراقبت نشسته بودیم یکی از آن بمب ها در سطح پایین پرواز میکرد. در حالی که هواپیما هم سطح برج دیدبانی ما پرواز می کرد، سر را هرچه روی زمین بود درو می کرد. در آن حال با نگرانی پیش خود حدس می زدیم که کدام شهر را بمباران کردند. خلبان ها از کابین خود برای ما دستکان می دادند. در این لحظه آیا شهر من بمباران شد؟ یا شهر دیدریش، لوتر، یا شهر گنار؟ یا هر چهار تا شهر همزمان بمباران شدند. به آسمان نگاه میکردیم و بیهوده میکوشیدیم که هواپیماها را بشماریم بار دیتریش گفت چه مانور خونینی هنگامی که وضع پست نامرتب شد ترس و وحشت بالا گرفت نامههای مادرم مدتی حدود دو هفته طول میکشید تا به دست من برسد چند روز پس از آغاز وظایف جدید فرم جدیدمان را تحویل گرفتیم برخلاف همیشه اندازهمان بود و جز علامت رسته که ما استفاده نمی کردیم دقیقاً مشابه اونیفورم اس, اس ها بود. ضمناً به ما کلا خود و کت کلفت زمستانی دادند و به جای پوتین هم چکمه معمولی با گترهای کوتاه می پوشیدیم. پس از یک هفته که از معمولیت برج دیدبانی خلاص شدیم، به جای استفاده از مرخصی و یا استراحتی که انتظارش را می کشیدیم، برنامه آموزش مقدماتی پیاده نظام آغاز شد. سر تا سر منطقه را سین خیز می رفتیم، از میان می میگذاشتیم، از روی موانع مختلف می پریدیم، سیمکار دار می کشیدیم، های انفجاری می ساختیم و این همه را برای دلخوشی داران اس اساس که به ما تعلیم می دادند انجام میدادیم. تمام منطقه و نواحی اطراف آن از یک نقطه کوهستانی آرام و بی سر و صدا به یک اردوگاه نظامی فعال تبدیل شد. روزها همه چیز ساکت و آرام بود، اما هنگام شب موتورها زوزه کشان از جادههای که جنگل میگذشتند صف بیانتهای سربازان به ستون یک در کنار خودروها راه میپیمودند و عدهای هم مشغول احداث خطوط ای می میشدند که من هرگز موفق به کشف علت آن نشدم گاهی اوقات هم یک خودروی نظامی از جلوی مدرسه ما میگذشت که پر از مجروب بود طبق برنامه استفاده از توفنگ های ایتالیایی نوعی تفنگ غیر معمولی که سرنیزه خمشویی در دهانی لوله آن قرار می گرفت آموزش داده میشد. در اولین تمرین لگد تفنگ به قدری شدید بود که شانم زخمی شد و مجبور شدم آن را پانسمان کنم. در تمرین دیگر چند بار لوله سلاح ترکید که ناگزیر استفاده از آن متوقف شد. چون برای هیچیک از طرفین ما و تفنگ ها مقرون به صرفه نبود. سلاح جدیدی به نام بازوکا معادل آلمانی آن پانزرفاس نیز به ما آموزش داده میشد. که اسلحه‌ای خوب و خوشدستی بود. به علاوه، آموزش مینگذاری و اینکه چطور دینامیت کار بگذاریم و ها را از کار بیاندازیم نیز جزء برنامه بود. در این مدت یک دوره آموزش تفنگ ضد هوایی 20 میلی‌متری را هم گذراندیم. شبها داخل تانک ها نگهبانی می‌دادیم و یا داخل سنگرها می‌خوابیدیم. و از یک روانداز برزنتی برای پوشش خود استفاده می‌کردیم. یک بار از سربازانی که از آن منطقه میگذشتند پرسیدیم چه وقت قرار این تانک‌ها و دیگر تجهیزات را به جبهه ببرند چرا باید اونها را به جبهه بفرستند منظورتون چیه خب وقتی یک ماشین بنزینش تمام میشه و بنزینی هم نیست که تو اون ریخته شه یا هلش میدن یا ناچار پیاده راه میافتند آنها پس از گفتن این کلمات خنده کنان در میان درختان ناپدید شدند قسمتی از مدرسه ما میبایست برای استقلال لشکر بلژیکی اس, اس به نام والونی تخلیه شود. فرمانده این لشکر لئون دگرل بلژیکی بود که شخصا در محل حضور نداشت. بلژیکی که اغلبشان پس از سه از چپهی روسیه منتقل شده بودند، آدم ماجراجو شاید خائن اما بسیار شاد و سرحال بودند. به هر حال این جماعت ساده و شاد در اونیفورم آلمانی عجیب به نظر می آمدند. این افراد اکثرا با پاهای برهنه در چارچوب های مدرسه می نشستند، آواز می تف توف می و بد و بیراه می گفتند. مزدورانی سزاوار توهین، اما در هر حال سربازان شجایی بودند. در یکی از روزهای آخر سپتامبر به ما مأموریت داده شد که گذرگاه نسبتاً وسیعی را از دو کیلومتری شمار شرقی مدرسه می کنیم. انبار مواد منفجره فجر و مینها، در گوشه و کنار جنگل استتار شده بود و ما مجبور نبودیم خطر و حمل و نقل آنها را در آن جده های خطرناک به جان بخریم در این مأموریت یکی از های بلژیکی برای نظارت بر عملیات همراه ما بود در آن صبح آفتابی در حالی که دست جمعی آواز میخواندیم پیش میرفتیم البته نه سرودی که معمولا جوانان هیتلری یا سربازان میخواندند بلکه یکی از های روز آلمانی را من و افرادم همگی شاد و خوشحال بودیم زیرا به جای یونیفرم گرم و تنگ لباس ورزشی پوشیده بودیم. وسایلی که با خود داشتیم عبارت بود از چند تا بیل و کولنگ، کلاه و کیسه کوچکی که ساندویچ‌ها و ظروفمان را در آن گذاشته بودیم. گروهبان جین پرسید آیا تا به حال از چیزی ترسیدی؟ کم و بیش. تا حالا مرده دیدی؟ خیلی سیات. موقعی که در شهر خودم در مونیخ بودم، بعد از حمله هوایی نهشها را ردیف به ردیف برای شناسایی در پیاده را گذاشته بودند. که اینطور. طور؟ اگه ناگهان سرکله یه گشتی دشمن پیداشه چیکار میکنی؟ فرار میکنم و جایی قایم میشم. و اون وقت اسم اینو میذارن شجاعت؟ در حالی که سرخ شده بودم گفتم البته از من تک و تنها که در مقابل سربازان گشتی دشمن کاری ساخته نیست. سرباز زنده بیش از سرباز مرد داره. گروپان پوز خندی زد و گفت «همم اینم حرفیست. جاده که میبای اسم این می شد بخشی از جاده‌ای بود که مستقیمن به طرف جنگل کشیده شده بود. ما از یک قسمت جنگل وارد دشت دلبازی می شدیم. روبروی ما تپه کوچکی پوشیده از بوته های تمشک و گیاهان دیگر قرار داشت. پس از چند دقیقه وارد قسمت دیگری از جنگل شدیم. عرض جاده بیش از سه متر نبود. و از دو طرف با درختان کاج محصور شده بود و عملا هیچ خودرویی رای نمی توانست دور بزند. مینها را در عمق یک متری زمین و به فاصله سه متر از یکدیگر به شکل کمربندی در دو طرف جاده کار گذاشتیم. در نزدیکی ما چندین انبار مین بود که عملیات ما را تا حد زیادی ساده می کرد. بیشتر ما تجربهای در کار کردن با بیل و کلنگ نداشتیم به همین خاطر همه با اشتیاق و حیجان میکردیم. و حفره با به عمق مناسب در زمین میکندیم و گروهبان مین ها را در آن کار میگذاشت. هنوز چند ساعتی کار نکرده بودیم که حسابی تشنه شدیم. طبق معمول صدای دور هواپیماها را بالای سرمان میشنیدیم. ارتفاعشان زیاد بود طوری که فقط دنباله دود آنها را میدیدیم که در آسمانی آبی مجموعی از نوارهای باریک تشکیل میداد. قسمت عمده کار انجام شده بود. حفره‌ها را کنده بودیم، ها را هم کار گذاشته روی آنها را پوشانده بودیم. فرمان راحت باش داده شد و بچه‌ها برای استراحت و خوردن ساندویچ و لیموناد به بالای تپه رفتند. درختان بلند کاج جلوی دید ما را گرفته بود به طوری که از بالای تپه تقریباً چیزی جز حوالی جاده‌ای که مینگذاری کرده بودیم دیده نمی‌شد. از جین پرسیدم چند تا جاده دیگه مینگذاری خواهد شد؟ جین گفت: به غیر از اتوبان اصلی پرو ام، هیچ جده در ای در آیفل مين نشده باقی نخواهد ماند. پس اینطور، طور، کجاست؟ جین گفت: الان درست در میانه اون هستی. اما هرچه بیشتر به سمت جنوب بری، در اطراف آخن بیشتر خواهید دید. چرا؟ برای اینکه توی منطقه دشت باز بسیار کمه و برای عملیات مناسب نیست. به عبارت دیگه پشتیبانی از پیاده نظام ممکن نیست. و به همین جهت عملیات سنگین رسمی محدود به اتوبان هاست. بعد به شوخی سیگاری تارف کرد. البته رد کردن تارف او شاید درست نبود. سعی کردم با کمال خونسردی دود سیگار را در دهانم نگه دارم و در این حال مراقب بودم که دود آن به بینی و چشمم نرود. موقعی که خواستم دود را از بینی خارج کنم، کندگار در آمد. تمام زحمتم به باد رفت. افتادم به صرفه. از آن سرفه هایی که انگار قلب و آدم را از حلقومش بیرون میکشند در حالی که بچه ها از دیدن ریخت و قیافم هم ریسه میرفتند جین ایستاده به جاده خیره شده بود ناگه هم فریاد زد یه ماشین داره نزدیک میشه از جا پریدیم و نگاه کردیم از انتهای جاده ماشینی به آهستگی نزدیک میشد ابتدا می‌خواستیم به طرف پایین بدویم و پیش از آنکه به منطقه مین شده برسد متوقفش کنیم که جین گفت و از این ماشین غیرعادیه داره تو مسیر و نادرستی حركت میکنه تمام خودروهای آلمانی از جده های اصلی عبور میکنن در هر حال وقتی نزدیکتر شد میتونیم به نحوی با داد و فریادها متوقفش کنیم ماشین به آهستگی در جاده میخزید و از تپه پایین میامد ظاهرا رانندش کنترل خود را از دست داده بود راننده این ماشین یا هرگز تنهایی رانندگی نکرده بود یا از ترسداش قالب تایی میکرد یا هر دو ماشین که یک فولکس واگن ارتشی بود با تردید جلو می آمد تنها سرنشین ماشین راننده بود که فقط کلا خودش را میدیدیم جین داد و فریاد کشید ایست جاده می این گذاری شده ظاهرا راننده صدای ما را نشنید و همچنان به راه خود ادامه داد افراد دسته همه دور هم جمع شدیم و داد زدیم توجه مین توجه مین توجه مین راننده همانطور که به ما نگاه میکرد به قسمت مین گذاری شده ی جد نزدیک و نزدیک می نگذاری شده جاده نزدی کن نزدیک‌تر میشد. دیگر تنها پنجاه متر با آن محل فاصله داشت یکی از افراد خاص از تپه پایین برود و او را متوقف کند که گروه جین او را گرفت و با هیجان فریاد زد احمق دیوانه اگه اون میخواد خودشو رو به کشتم بده بذار این کارو بکنه اما تو خودتو همراه اون به آتش نکش ما دوباره داد زدیم توجه مین توجه مین توجه مین ماشین ایستاد رانندش که در آن هوای گرم پال بلند نظامی به داشت از آن بیرون آمد. صورتش را کلاه گل و گشادی که دستکم چندین شماره برایش بزرگ بود پوشانده بود. کلاهش را بالا زد و به طرف ما نگاه کرد. جین جلو رفت و سرش داد کشید. جده می این گذری شده! اما سرباز به جای آنکه برگردد با سرعت داخل ماشینش برید. جین با مخلوطی از انگلیسی و آلمانی سرش داد کشید اما او که ماشین را روشن کرده بود ناگهان به سرعت زیاد به طرف ما به حرکت درآمد جین داد زد دراز کش و افرادی را که کنارش ایستاده بودند روی زمین حال داد همه به سرعت روی زمین دراز کشیدیم و گوش هایمان را محکم با انگشتان دست فشردیم ناگهان صدای چند انفجار کوتاه به گوش رسید که بی به صدای ترکیدن قوطی کنسروی که برای گرم شدن در قابلمه آب جوش میانداختیم نبود. پس از چند لحظه سرمان را بلند کردیم. ماشین به محض برخورد با مین منفجر شده و دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود. موتور ماشین در حال سوختن بود و سرباز بیچاره به در ماشین آونگ بود. ما به طرف او دویدیم. جین و لوتر سرباز را از بقایای ماشین در حال سوختن دور کردند. و دیگران هم با ریختن خاک، کوشیدن آتش را خاموش کنند. سرباز وضع بدی داشت. پاهایش تا بالای رانها طوری متلاشی شده بود که گوشت و استخانت کپارهای کفش و لباسش تشخیص داده نمیشد. من نگاهی به اطراف انداختم. دیتری شو هانس زود برید مدرسه دکتر رو خبر کنید. یک برانکار هم بیارید. خودم، جین و چند نفر دیگر دور سرباز مجروح زانو زدیم. سعی کردم بند کلاهش را شل کنم و آن را از سرش بردارم. با تعجب چشمهایش را باز کرد. به من نگاه کرد و زیر لب چیزی زمزمه کرد که مفهوم نبود. سر او بدون کلاه منظره جالبی داشت. موهایش به شکلی ناهمگون کوتاه شده بود. همانطور که سر مجرمین را اصلاح میکنند. جین سعی کرد دکمه های بالای پالتایش را باز کند. سرباز دوباره چشمهایش را روی هم گذاشت. جین با تعجب گفت اینجا رو ببین سرباز زیر پالتو یک آنیفورم زیتونی رنگ پوشیده بود جین مشغول وارسی جیب سرباز شد و گفت این مرد یک سرچوخی آمریکایی. برای چند لحظه چنان گیج و گنگ شده بودم که زبانم بند آمده بود سرانجام به خودم آمدم و پرسیدم اما آخه اینجا چه می پس از آن بود که متوجه شدم بوته ها و درختان اطراف ما با ورقه های کاغذ پوشیده شدند. خم شدم و یکی از آنها را برداشتم. یک اعلامیه ی تبلیغاتی آمریکایی بود که رسمن از سروازان آلمانی میخواست سلاح خود را زمین بگذارند و به نیروهای متفقین تسلیم شوند. در بخشی از اعلامیه گوشههایی از نامه های زندانیان جنگی آلمانی نقل شده بود که در آن از خوش متفقین و فواید دموکراسی سخن رفته بود اعلامیه همچنان حاوی سر مقالی از روزنامه فورکیشر با اوباختر یا روزنامه ارگان حزب ناسیونال سوسیالیست بود به حکایت از آن داشت که آمریکایی‌ها طرحی تنظیم کردهاند که تمام کودکان آلمانی از شش سال به بالا را از آلمان خارج کنند در پایان اعلامیه تبلیغات گوبلز به باد تمسخور گرفته شده بود نیروی انفجار این اعلامیه ها را در همه جا پراکنده بود زمانی که این اتفاق افتاد من از توی قضیه چیزی دستگیرم نشد. اما بعدها فهمیدم که این شیوه معمول آمریکایی‌ها بود که با لباس مبدل سوار بر موتورسیکلت یا ماشین‌های آلمانی وسط شهر یا های خط جبهه که هنوز در تصرف های آلمانی بود ظاهر می‌شدند و ها را مثل باران به اطراف می‌ریختند و سپس مثل برق پشت خطوط خود ناپدید می‌شدند من دوباره کنار سرباز مجروح زانو زدم جین دکمه های بلوزش را باز کرده بود. پس از لحظی چشم هایش را از هم گشود و به جین نگاه کرد و ناگه هم وحشت زده در حالی که به سختی نفس می‌کشید فریاد زد. نه! نه! جین پرسید. موضوع چیه؟ سرباز امریکایی در حالی که وحشت زده سعی می کرد. خودش را از زمین بلند کند گفت. اس اس! اس اس! جین به آرامی او را روی زمین خواباند. آمریکایی ادامه داد: خواهش میکنم نکشید. جین پاسخ داد: آروم بگیر رفیق. کسی قصد کشتن تو را نداره. سر مجروح را بلند کرد و بطری آب خودش را به دهان او گذاشت. مرد مجروح آب را با ولع بسیار نوشید. آمریکایی پرسید: تو اس اس؟ جین پاسخ داد: بله رفیق من اس, اس هستم. آمریکایی زورکی خندید و گفت: شما خوب اس اس. و به حال اقما فرو رفت. دیتریش و هانس با برانکار و دکتر مدرسه هم به دنبال آنها از طرف جنگل رسیدند. در حالی که دکتر سرباز آمریکایی را معاینه و زخمش را پانسمان میکرد ها را به جماوری اعلامیه هوا داشتیم و آتش بزرگی از آنها برپا کردیم. ماشین دیگر نمیسوخت اما هنوز کمی دود از باقی مانده آتش بر میخواست. به جای مین‌های منفجر شده مین جدیدی کار نگذاشتیم زیرا ممکن نبود که همه مینها با هم منفجر شده باشند و مینهای باقی مانده ممکن بود کار دستمان بدهد من با اشتیاق به سوی که سرباز آمریکایی از آنجا آمده بود نگاه میکردم، و هر لحظه منتظر بودم چند نفر دیگر از گرد راه برسند اما خوشبختانه خبری نشد وقتی نزد مجروح آمریکایی برگشتم، جین و دکتر تازه داشتن او را روی برانکار میگذاشتند. رویش را با چند پتو پوشاندند و بندهای برانکار را بستند. هر کسی سریع باید به پشت جبهه برسونیم. باید هر دو پاشو قطع کنیم. از اونجا که جوان بلانقد و سنگین وزنی بود، مجبور شدیم چهار نفری برانکار را حمل کنیم که با توجه به وزع بد جاده کار بود همینطور که پیش می رفتیم، سعی کردم او را به چشم یک دشمن ببینم. بیگانه که هواپیماهایشان هر روز بر فراز کشور من پرواز می کردند و همه چیز را می کوبیدند. اما نه تنها من، بلکه بقیه هم نمی توانستند او را به چشم دشمن ببینند. به تدریج، جنون، جنایت و بیهودگی کامل جنگ در ذهن کودکانی من نقشم است. پیش از آن، چون این فکری من اما اکنون با تمام نیرو به مغزم هوجوم آورد. سرواز آمریکایی در طول راه بازگشت به مدرسه بیهوش بود در آنجا به اتاق عمل کوچک مدرسه منتقل شد و بیدرنگ تحت عمل جراحی قرار گرفت جراحی موفقیت بود و بیمار زنده ماند اما من هرگز قادر به بیان جزئیات ماجرای دردناک او نیستم همان شب دستور رسید که بالا فاصل مدرسه را ترک کنیم جماه ماه که در پیش روی ما قرار داشت، دوران شدیدترین ترس و وحشت و گرسنگی و اوج بدبختی بود. اگر قبلا می تقدیر، چه رقم زده است؟ همانجا می و قدم از قدم بر می داشتم.